بسم الله الرحمن الرحیم بنام نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره الفلام را این آیات کتاب و قرآن آشکار است ای بسا که کافران آرزو می کنند ای کاش مسلمان می بودند بگذار ایشان را تا بخورند و بهرمند شوند و آرزو ایشان را مشغول نگه دارد پس بزودی خواهند فهمید ما اهل هیچ دیار و حلاک نکردیم مگر این که برای آن از پیش موعید تعین شدد هیچ گروهی از وقت معین خود سخت نمی کند و نه همعقید می ماند و گفتند ای کسی که بر تو قرآن نازل شده است واکن که تو دیوانه ای اگر از راست گویان هستی پس چرا فرشتگان را پیش ما نمی آورید؟ ما فرشتگان را نمی فرستیم مگر به حق اگر فرستاده شوند در این هنگام به آنهایی که خواستار آمدن فرشتگان شده اند محلت دادن نمی شود. ما بیگمان قرآن را نازل کردیم و ما بیگمان آن را نگهبانیم. و بیگمان پیش از تو نیز در میان اقوام پیشین پیامبران را فرستادیم هیچ بری و ایشان نمی آمد مگر آنکی او را استهزا می کردند. این اینچنین آن استهزا را در دلهای مجرمین راه میدهیم. با این هم با آن ایمان نمی آورند و بگمان سنت پیشینیان نیز با این منوال گذشته است و اگر بر ایشان دری از آسمان بگوشاییم و ایشان مرتبن در آن بالا رووند البته می گویند و چشمان ما بسته شده بلکه ما قومی هستیم جادی شده و بیگمان در آسمان برجهایی آفریدیم و آن را برای بینندگان زینت دادیم و آن را از هر شیطانی شیطان شده، حفظ کردیم مگر آنکه که کسی استرابطه سمع کند پس نیزه روشن آتشینی او را تعقیب می کند و زمین را گستردیم و بر آن هارا همچون لنگری قرار دادیم و در آن از هر چیزی به گونه موزون روی می دیم و در آن برای شما اسباب معیشت ساختیم و نیز برای آنانی که شما روزی دهندهشان نیستید و هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزاین آن نزد ماست و ما آن را فرود نمی آوریم مگر به اندازه معینی و بادهای باردار کنیم دیر آفرستادیم آنگاه از آسمان آب شروع ریختیم. و شما را با آن سیراب گردانیدیم در حالی که شما توانایی ذخیره کردن آن را ندارید و این ما هستیم که زنده می گردانیم و می و ما وارث همه اشیا هستیم و بگمان آنانی را که پیش قدم شده اند شناختیم و بگمان آنهایی را که حقب مانده اند شناخته و این شناخته و بگمان این پروردگار که ایشان را حشر می کند حقا که او صاحب حکمت و داناست بگمان انسان را از گل آوازدهنده بدبوی متغیر آفرید و جن را از پیش از آتش گرم و سوزان ها فریده. و بیادار وقتی را که پروردگارت به فرشتگان گفت بیگمان من انسان را از گل آوازدهنده بدبوی متغیر آفریننده ام پس چون پیکر او را راست کردم و در آن از روح خود دمیدم پس به او سجده کنان بیفتید پس همه فرشتگان یک جایی سجده کردند جز ابلیس که اپاور از آن که با سجده کنندگان باشد خداوند گفت ای ابلیس دلیل تو چیست که با سجده کنندگان نمی باشی گفت من هرگز حاضر نیستم بشری را سجده کنم که او را از گل آوازدهندۀی بدبویی متغیر آفریدهای خداوند گفت از آنجا بیرون شو زیرا تو رانده و بیگمان تا روز قیامت بر تو لعنت است گفت ای پروردگار من پس مرا تا روزی که مردگان برانگیخته شوند مهلت خداوند گفت پس بگمان تو از جمله محلت یافتگانی تا روز وقت مقرر شده یعنی قیامت گفت ای پروردگار من به سبب آنکه مرا گمراه کردی بگمان من نعمت های روی زمین را بر ایشان زیب و زینت میدهم و بگمان همه ایشان را گمراه میسازم مگر بندگان مخلص تو از ایشان خداوند گفت این رویش بندگان ساله راه راست بر من یعنی بر خود لازم گرفته ام که این بندگان را رعیاب سازن بگمان تو بر بندگانی من تسلط نخواهی یافت مگر آن عده از گمراهان که از تو پیروی می کند. و بگمان دوزخ و عدگاهی همه ایشان است آن را هفت درست برای هر دری گروه از این گمراهان مشخص شده است. بگمان پرهیزگاران در بهشت و در کنار چشمسار ها می باشند و با ایشان به قسم تحنیت گفته می شود با سلامتی و امنیت به آن دراید هر کی را که در سینه دارند می زوداییم برادروار بر تخت های با مقابل یکدیگر قرار دارند در آنجا به ایشان رنج نمی رسد و نه هم از آنجا بیرون شدنی هند. بندگانم را خبر بده که بیگمان منم آن آمر زندهی مهربان و در عین حال این عذاب من همان عذاب است در و ایشان از مهمان ابراهیم خبر بده چون بر او داخل شدن با او سلام گفتند ابراهیم گفت بیگمان ما از شما تسناکیم گفتند ما ترس بیگمان ما به تو پسر دانا را می دهیم گفت آیا با وجود این که پیری هم فرا مرا بشارت دادید؟ پس به چی چیز مجده می دهید؟ گفتند ما تو را به حق مجده دادیم پس از زمره ناامیدان ما باش گفت چه کسی از رحمت پروردگارش نا امید می شود جز گمراهان گفت ای فرستادگان خدا پس معمولیت شما چیست؟ گفتند بیگمان ما به سوی قوم گناهکار فرستاده شدهیم مگر خانواده لوت بگمان ایشان را یک جا نجات خواهیم داد جز زنش مقدر داشتیم که او واقعا از بازماندگان است و از فرستادگان نزد آل آمدند او با فرشتگان گفت بگمان شما گروهی ناشنایید گفتند بلکه ما به تو همان چیزی را آوردیم که ایشان به آن شک داشتند به تو چیزی را آوردیم که حق است و ما واقعا راست گویی پس در پاسی از شک خانواده اترا از شهر ببر عقبشان حرکت کن و هیچ کدام از شما به عقب ننگرد و بایی که معمور شده اید بروید این را نیز با وای کردیم که بیگمان در سبگاهان دنیا دیانها برکنده می ساکنان شهر سوی منزل لوت آمدند در حالی که به از مهمانان خشروی لوت بشارت می ناد لوت گفت بگمان اینها مهمانان منند پس ما را رسوان نکنید و از خدا بترسید و ما را خجالت ندهید گفتند آیا تو را از حمایت جهانیان منان نکرده بودید؟ گفت اینها دختران منند اگر میخواهید کاری کار مشروع انجام دهید از ایشان به حیث زنی نکاهی خود استفاده کنید قسم به زندگانی تو ای پیانبر ایشان در نشه مستی خود سرگردان می باشد هم و همین که خورشید سر برکشید ایشان را صدای هاو ناک فرو گرفت پس ما شهرهایشان را زیرو او کردیم و بالای آن را پایین قرار دادیم و بر ایشان های از گل پخته بارا نیدیم. بیگمان در این قصه نشانه است برای علام شناسان یعنی مردم با فراست این شهرها در راه آمد و شده مردم واقعی هست حقاکی در این نشانه هایست برای مؤمنان و بیگمان ای ایکن نیز از ستمگاران بودند لذا از آنها انتقام گرفتیم و آن هر دو شهر بر سر راه آشکار قرار دارد و بگمان اهل هجر نیز پیانبران را تکذیب کردند ما آیات خیش را به آنها دادیم ولی ایشان از آن رو گردان بودند ایشان خانه های امنی را از ها برای خود می تراشیدند پس نه صدای حولناک ایشان را صبحگاهان گاهان گرفت پس آنچه را به دست می آوردند از ایشان عذاب خدا را دفع نکرد و ما آسمان ها زمین و آنچی را در بین آنهاست نیا مگر به حق و بیگمان قیامت نیست لذا از ایشان بگذشت نیکو در بیگمان پروردگار تو هم اوست آفرین دو دانا و بیگمان به تو هفت آیه از دوتایی ها یعنی آیات هفتگانه صبح فاتحه را که مکرر خوانده می شود و قرآن عظیم و شأن را دادیم چشمان خود را با آنچه با گروه های از ایشان دادیم مدوز و بر ایشان اندهگیم مشو و بال خود را بر مؤمنان بگستر و بگو حقا که منم آن بیمدهنده آشکار بر شما چنان حضابی را نازل کنیم که بر تقسیم کنندگان نازل گردانیدیم آنهایی که قرآن را متفرق ساختند یعنی بعضی را قبول و برخی را رد کردند پس قسم به پروردگارت که البته از همه ایشان سقال کنیم از آنچه می کردند پس آشکارا ساز آنچه را به آن معمول می شدی و از مشرکان روی برتا حقا که ما در برابر تمسخور کنندگان تو را ای آنانی که با خدا معبود دیگر را قرار میدهند، دهند ولی به زودی به قط پی می بند. ما واقعا می دانیم از سبب آنچه می گویند سینه تنگ می شود. پس پروردگارت را به پاکی آد کن و از زمره سجده کنندگان باش و پروردگارت را پرستش کن تا هنگامی که به تو یقین یعنی فرا فرورستد.